اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اهل الكتاب من إن تأمنه بقنطال يؤده إليك ومنهم منن تأمنه بذينار ومنهم من إن تأمنه بذينار لا يؤديه ليس إلا ما دمت عليه قائنا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بنا من أوفى بعهده واتقى فمن الله يحب المتقين طوب الذين اشركوا الذين اللہ تعالی میگه خیانت مالی یهود فوکر آلی هست و از احنی کتاب کسانی هستن که اگر شما امانت گرهید به دشت آنها به قنقار یک خرمنی از مال تو یو عبدی اون مال را ادا می کند الیک بجانب شما به معنی که از او طلب کنید یعنی این ها اون انسان خودی هستن و من هم این غسمت شکره هست و بعضی از ها کسانه هستند که اگر شما امانت بدهید به دست آنها یک دیناری را اون یک دینار را نمی کند به شما یعنی منکر می شود ایلا ما دوم تا علیه قائمه مگر این که شما مدابن بالاشتر اون بیشتید و گیده بده بگید تازد تو بگید به ما که فاصله بگید پرده پرده پرده بیدین کار میکن چرا اینقدر خیانت میکنن که یک دینار هم حاضر نیستن پاش بدن مگر با زحمات بسیار بی‌قاطری شد غالبا این خیانت به سبب اینست که که این که آنها گفتند که لیسا علینا القمینا سبی این مثلا را برای خود روز کردم که ما هر چی از ناخانه های مکه بخوریم از این امین بخورین بپوشین همچو ما من ما را خدا ملامت نخواهد یعنی ما اختیار مال و جاری این اعتقاد درای خود رشد کرد ذالک این خیانت به سبب اینه که آنها میگفتند که لیسا علینا بالامین سبیل نیست به دردن ما نسبت به امین هیچ راهی گنجا خلاصه ما هر چه این ما بخری موهر پهن بکنین چون ما پیغمبر زاده ای و آقا زاده ایم کسی ما ملامت هم نمیکنه خدا هم که خدا هست ما را نمیفرسه و این چیز را هم میگفتن که خدا به ما اینقدر احسان این آقایی را داده امروز هم همین یهود و نصاره همین اعتقاد را که بر مسلمان هر که تاقت و تاز کنن اینها خدا پردار قیامت نمی پرسه. و می گفتن بر خدا دروغ. تقلیج قالم و یکولون الله الکده و این چیز هم به خدا نشبت می ده ده. و این دروغ را به خدا نشبت می ده ده. و قوم یعلمون و آنها هم می دانستن که دروغ میگن. بله، چرا مواخته نمیشید حتما مواخته نمیشید ها بله مواخته نمیشود کسی که آفا به اهدهی ایفا کند اهده که با خدا یا بندگانش کرده عهدی که با خدا کرده که تو رب منی و من متی امر تو هستم این عهد را ایفا کند راه ملامتی نیست بسته و تقا از خیانت پرهیز کنه از دروغ پرهیز کنه از کفروشت پرهیز کنه تو بله لما ایفا في و ثمره کسب اینه که ان الله يحب المتقين به درسی که الله تعالی دوست دارد چنین متقیان را چنین متقیان محبوب خدا میشه که عقده که با خدا کردند یا با بندگانش کردند و از و شرک و بکنن پرهیز کنن اوامر خدا را به جا بیارن الله يحب المتقين الله تعالی دوست دارد چنین متقیان را الله تعالی دوش داره بلعنه هایی که اهد می کنند و قسم می خورند و بعد قسم های خود را نکز می کنند اهد شکلی می کنند فرما مورد اقاب خدا حتما قرار خواهند کرد ان الذين يشترون باهد الله انهای کی خرید میکنن بمقابل عہد الہی یعنی در مقابل اقاید صحیح و در مقابل قسمهایی که خوردن در معاملات مال خن ثمنن قلیلا کمی کور و نام خدا را مفروشند یعنی قسم نا آدمی و مال میبرند یا عهدی که با خدا کردن اونو عهد خدا را نادیده میگیرن و مال میبرن خدا از تمام انسانها عهد گرفته در عالم ارواح و به واسطه انبیاء از غمه انسانها عهد گرفته که شما خیانت نکنی شما قسم ناهق نخورید و مال مردم رهی قومل نکنی این ها یک قسم ناهق مال مردم رسید میشه اللہ تعالی میگه آنهایی که خرید می و مقابل اهد و پیمان یعنی در مقابل اقاید شهیه و در مقابل کسنهایی که برای معاملات با خلق خدا میکنند و کسن میخورند و مال مردم را میبرند برن سمن کلی خرید میکنند کنن اولایت شمره اول اینها لا خلاک لهم فی الاخرت اینها ایچ نسیبی در آخرت شمره اول اینه آنهایی که کسم ناهد میخورن، اهدهایی که با خدا کردن، عهد خدا را نادیده میگیرن، در مقابل اهد خدا پول میگیرن، در مقابل کسم پول میگیرن، کسم ناهد میخورن به پول میگیرن، ثمن قلیل همه دنیا در برابر عهد خدا ثمن قلیل الله تعالی میگه اولین ثمره اینه که لا خلاق لهم فی الاخره هیچ ثمره‌ای ان ها در اخرت نداره دو لا یکلمهم الله خدا با اینا کلام نمیکنه بالو دیو کو لا ینظر الیهم یوم القیامت نظر رحمت اللوت در طرفان ها نمی روز دروز سیامت و کمری چارو ملائی و زکیهن و دنائه آنهار هر جز باق نمی کنه آنهار آنهار دنائه باق نمی کنه بلکن ولهم عذاب علیمون این سمره پنجمبری انها بسیار در هستند با پند سمره و نتیجه اینها مواجه می که اهدی که با خدا کردند که ما بندگی ترا می کنیم و رجوبیت ترا قبول داریم الان زیربار بار طاعت و توحید نمی آیند این الله تعالی با این پند سمره مواجه خواهد کرد شکلی پنجو خیانت علمی دیگون خیانت علمی یهود را الله سبحانه و تعالی بیان میکند که چه خیانت علمی نهاداشت که <تبه> کتابهای مکتوب خود را تداعی خود را شبیه به کتابهای الهی میکند و نیاز دارد دانه به خدا این خیانت علمی در یهون این الذین و منهم و بتحقیق غیث بعضی از این اهل کتاب یبدستی هستن یلبون یلبون السنتهم بالکتاب کجمی کنن هنگام خاندن نخبت بکتاب که من الکتاب شما فکر کنید این لتحسب من الكتاب و ما هو من الكتاب و در ببینی ای انسان شاید کتاب را پول آلمین بر نیا. خود را. جنان اظهار می داشتن که حضرت عیسیٰ مارا دستور خاندان خاندن اشتاده است تاکه شما دومن کنید که انا از کتاب هست لتحسبوه من کتاب، از اشتای کتاب از آیات کتاب اگه اینها تورات اکثر عوام نمی دانستن همان که اکثر این امت هم قرآن را نمی دانا. زبان عبرانی اصلا نمانده بود اینجا، الا کلیلہ علماء زبان خود را منحرف نیکردن تا با خور مردم میدن که درک کتاب مخانه قرآن مخانه قرآن مخانه او کجا قرآن مخانه لسه احسابوه من الكتاب حالانکه و ما هو من الكتاب هو از کتاب نیش اون از آهایت ساخته شده خود انهاست و یکولون و بعض با زبان هم میگن که هو من اندلال این لفظ یا مانا دقیق اینه بالاتران تعالی اقوز جانب خدا حالک و ما هو من عند الله و جانب خدا نه نه بو ها حق خدا نسبت می گیره و با هو من عند الله و میقولون ان الله کذ خدا تعالی میگه اینا کتاب های تعلیف خود را و صحای خود را به خدا نسبت میدن دروغ میگن و یَقُولُونَ در خدا دروغ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَانَرَ افْتَشَانَ میدانات کا کیت خودرا کی دروغ می گان مگر سریے مردم، و برائے طریق مختص شاگردان خودشان زبان خودرا دیگر و این با این کتاب این هم تفسیر تورات این هم تفسیر این هم این هم و, هم و, هم و, هم و هم هم هم کم تا که شما فکر کنید که از کتاب هستن و اینها از کتاب دارن میخوادن و بعد می میگفتن که به ما حضرت و اینها به ما هم دستور دادن که ما این چیزه ها را این چیزه را به پیغمبرها نسبت میدادن کہ سبحانه و تعالی در این آیه بادی شبخات انها را کہ حضرت عفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مارا بخاندنش دعوت دادیش حضرت عیسیٰ و ما گفتے کہ شما مارا بخانی یہودیاء گفتن اوزیر گفتے کہ مارا بخانی حالا قبل دن کی این آئیرہ ما کان لبشر نیست یه الله الكتاب و الغُوم النبوات سُمَّيَ يقول للناس كونوا ابادا لمن دون الله شان النزول این آیات که بزرگان نفر کردن ابن اشخاق و غیره ابن اشخاق و غیره ابن ابّاس حضرت ابن ابّاس نقد قال قال ابو راطی القردي هنا استمعت الأحبار هنغامك جمس دن تجمع کردن أحبار من اليهود والمسارى من أهل النجران من رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء بزرق يهود ونسارى از أهل النجران بمهدر بمغمبر تجمع کردن وقد دعاهم إلى الإسلام وبيغمبر عليه والسلام والسلام أنهار دابت بإسلام كانت اطوریب گفت که شما اراده داری دی محمد ام نعبدکا شما اراده داری کما شما را عبادت کنیم کما تعبد النصار ایسابن مریم یهود به پیغمبر گفتند کہ شما تراده داری کما شما را عبادت کنیم همانطوری که نصار ایسابن مریم عبادت کنیم یعنی تو خود را اینقدر بزرگ میدانی مثل عیسی وقت وقاله رسول النصرانیون من اهل نجران اوا ذاکرین تو این چه اراده داری که باید مسیح عیسی ابن مریم متادیشی و عبادت می‌شی برای عبادت تو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب این بدبختان پیغمبر گفت ما عبد الله من معبود غیر الله من فناه به خدا میگیرم از اینکه که پرستش کنم غیر خدا و از این که نامر به عبادت غیرهی من به خدا فناه میگیرم از اینکه که کسی را دستور بدم به عبادت غیر خدا عبادت حق استخاصی خدا من به خدا فناه میگیرم و ما به ذالک بعتنی الله و ما به ذالک امالنیه خدا من برای این طور مغوص نکرده و دستور نداده که من به عبادت خودم یا به عبادت غیر خدا کشیده دعوت بجم. نه به من خدای دستور داده و نه برای کار من مغوص کرده. این آیه نازل شد. ما قالا لبشر ایودیه الله. خوب یک ثانیه دیگه دیگه. اخراج عبدالرزاق الحسن خالا بلغنی ان رجولن قال یا رسول الله مشکینا مولویہ خوب متواثباشی قال عبدالرزاق بن حسن روایت میکند کہ بلغنی ان رسولن حضرت امام حسن بصری میگه و من این خبر رسید که شخصی به محضر پیغمبر آمد گفت یا رسول الله مصلی علی کما یسلیم بعدونا علا بعد ما سلام نیدهیم شما همان را همانطوری که بعد ما ما دیگر سلام نیده ما دیگر کاری برای شما نید کنیم ما سلام نیدیم شما را همانطوری که ما دیگر را سلام نیدیم اپلانه سلولک ای پیغم دار ما شما را سجده نکلیم وقتی به شما نتریک شدیم شما را دیدین افلان از کدولت ما وقتی با شما بر میخوریم شما را میبینین در مسجد در سفر در حضر ما شما را سلام میدیم همان طریقی این سلام را ما بید دیگر هم میدیم افلان از کدولت ای فیغمبر ما شما را سجده نکنیم قال الله فرماد نه ولكن أكرموا نبيكم. إكرام النبي وآرفوا الحق لأهله حق سجده نداری منا سجده کی ولکن اکرمو نبیکم اکرام نبی خود را داشتا باشی واعرف الحق لاغریه برای الوهم حق حق قدر قائم واجب حق اهل رحم بدانی اهل رحم أن يس... أن الله اصلاً جایز نیش که سجده کرده شبت برای کسی غیر از کلا فا انزلاللہ اللہ تعالی این را نازر کرد ما کانن بشرین جایز نیش برای هیچ بشرین که خدا به او کتاب بده هم دلیل نغلیت حکم دیو بدات بر درست و صحیح تا کلو دانش حکومت بهش بده حکم را به صحیح عقل صحیح خدا بده بده و النبوته و خدا بهش نبوت بده ثم يقول للناس اور پیغمبر بگوید اون صاحب حکم و اون صاحب کتاب دیگویت مردم شکون و عبادلی من دون الله باشی پرتش کننده من غیرش خدا اصلا امکان ندارد که خدا به کسی کتاب بدهد به کسی فهم صحیح بدهد و کسی را نبا نبوت نبا کند این نبی صاحب نبوت و کتاب و حق مردم بگیتون و عبادلی مردم بی ایک بردش من باش من سجده کنی، من تواف کنین برای من نظر و خیرات بگی اصلا الله تعالی میگه امکان ندارد که نبی چنین کاری ولیکن لیکن اون انسان خدا به اون نبوت می دهد اون نبی میگوید، گوید ربانی ربانیین به مردم همه شما رب پرست باش همه شما ربانیین باشید یعنی خدا پرست باشی، عوادت زبانی مالی بدنی برای او انجام می به سبب اینکه خدا شما کتاب تعالیم می دهید دیگران را و به سبب اینکه شما میخواانید؟ خود شما میخواید کتاب تعالیم میدیدید؟ چرا؟ بر نووی امکان ندارد که به کسی چنین دستوری بده و مردم را به عبادت خودش بخواند؟ تکان نداره ما خاان رو خب کتاب خدا بیده مستقید جسی انبیاء صلی اللہ علیہ یا بلواثت ہے کہ اللہ شما خدا کتاب دا دے. خدا فحمدین دین دے نبو غد حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمه الله وقت در سال ہزارو شیصدو نبدو حشت حجری کمری ملاقات ایشان در راویل پندی بود در محضر مولانا بلام الله خان صاحب خوکرانی که برای طلبی اون درست قرآن کرد همین احیم كان آئینا خدا کتاب داده که مستقین کتاب داده مثل انبیاء علیه و صلی اللہ یا بلواسطه خدا انهار کتاب داده بعد از انبیاء انا هرگز بے عبادت خود و بے عبادت غیر اللہ کسی دیگر رضاوت نمی در خنیم توجی کر کتاب مستقیم جانا دادے یا بلواست کتاب دادے جو علماء ربانی باشن حکم و پہنسی دادے نبوت و رسالت دادے خوبی گے برائی مردم خون عبادلی مردم پر از تشکل اندی من باشی سا امکان نہ دادے لیکن ان صاحب کتاب می گویا بسبب انکه شما دا خالیمی دیدی گران را کتاب و بسبب انکه خود شما بی خالیم بعد قرآن می گئے وَنَا يَأْمُلَكُمْ اَن تَتَّخِذُ شما را ان صاحب کتاب و حکم نبوت دستور نبی که انتخاب قرار بلهی پر اشتگان را و و صلات السلام را رب به رسولان هرگز اون صاحب کتاب چنین دکتوری نمی دکتر ایا مرکم به کفر بعد از انتون مسلمون ایا شما را دکتور به کفر می دهد بعد از اینکه شما مسلمان بودید هر چنین دکتوری صاحب کتاب نمی دکتر ایا مرکم بالکفر بعد از انتو محلمون تو معلوم شد که سجده و عبادت این کفر و هرگز او به کفر چنین در طوری نمی دهد که در طور سجده غیر الله کفر است خب اینجا من چند حوالی راجب تذکیر این آیه در خدمت سروران گرامی میخوام خواهم من دعا الى عبادت نفسه فکت دعا الناس الى ایتون عابدین الله من دون الله کسی دعوت بدهد مردم را به عبادت نفسش، کشت او مردم را دعوت داده بین کشتر عابد او باسم غیر خدا او اگر شرین نحی نکنه نا دانهار از عبادت غیره از عبادت اللہ فقط به عبادت خود کی دعوت دار او عبادت به عبادت مردم را بی عبادت دعوت دار دے اگرچہ آنها را دیب عبادت خدا جلو گیه نکنه اگر دنیا من عبادت سنی او عبادت انسان آنها را کرده بلکہ وین عمر ہوگی عبادت اگرچہ بی عبادت خدا دشکور بھی دے خو وات عبادت دیگر من جا علا بينه هو بین الله بواسطه تن في العباده قد دعاي فرق في خودش و بین خدا واسطي در عبادت قرار دهد قد دعا يا رب بخاله فقط عبد هذه الواسطه من دون الله این عبادت کرده این واسطه را غیر خدا لأن هذه الواسطة تناطي الإخلاص له وحده هذه الواسطة منافع إخلاص براي خداك في غير خداك خان واسطة قرار دادورة بين خداك وبين خدا هذه الواسطة وعبادت شهر و هذه المخالفة بإخلاص با لله وحده واين ينتفي الاخلاص فان هي العبادات ومن ثم بي خاطر الله تعالى يا پیغمبر فارمض فعبد الله مخلصا له الدين لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبد من الله نكرب الله ظلف الله جاءه <عربابا> تعالی یقول انهم اتخذوا من دونه اربابا هنا توکل به اولیاء الله میگه من اربابا و یقول صلی الله علیه و سلم قال الله پیغمبر فرمود که خدای عزوجل میگوید انا اغنا من از تمام شرک آغنی ترم از من عمل عملا اشرا که فی همعی غیری سر هر عملی انجام بدهد که شریف کند در آن عمل با من غیر من را ترکته و شرکته من اون انسان را با شرکش بیل میکنم لدت در روایت دیگر فرموده انا من بریون وهو للذي الذي عمله ما نهدون عمله مشترك بيزارهم يقولون ما البرايكة في كبرا وأنجام قال صلى الله عليه إذا جمع الله الناس يوم القيامة نادى مناد يقندا قلن دي إعلان ميكنات من اشرکتی عمل امیلهو اعمل لله احدا فلیتلم ثوابهو من اند غیر الله هرکه هر عملی انجام داده و در آن عمل با خدا کسی بیگر را شریک کرده طلب کنه ثواب آن عمل را از نفد غیر خدا چرا؟ فین الله اغن کنه قائل رواه احمد این روایت را حضرت احمد در مصریده خود اشکر کرده به هر حال سجده که صحابی عرض کرد يا رسول الله اجازه سجده باشد خدا آیا نادر کرد که برای نبی مناسب نیست امکان ندارد که نبی سجده خودش به دیگری را بخواهد شرورندگان امین امروز مردو صبر انبیاء را قبر اولیاء را قبر بندگان مقرب الهی را تقدس میکنند تواف میکنند برای شما نظر میدان حالانکه در حیات طیبه انبیاء رحمت الله و سلام در حیات طیبه اولیاء آiai اولیاء را تقدس میکنند آiai اولیاء را تقدس میکند آiai اولیاء ذات مقدس اولیاء بودند و انبیاء هر حرکت توفی میکند کسی که نکرده اللہ تعالیٰ این مرض یهودیها ها و هست کہ امروز در امت شرائط کرده مشکلی کی پیغمبر اسلام و قرآن و یهود و روی همین، من منعظ کردم در اول درست سو کہ شرکی یهود و نصارات بھی کردن ہمین پرستش و خاندن و نظر و خیرات انبیاء علیہ و اولیاء وَإِذَا الله اللَّهُ مِنْتَاكَ النَّبِيِّينَ تَرْغِي بِلَا اتِّبَاعِ الرَّسُولِ اللَّهُ تَعْلَى مِنْتَ هَمَيْا أَنْبِيَا مُغِي إِسَاءِ النَّبُوَاتِ وَالْرِزْقَانَةِ این اهد و قیمان را گرفتن که هر ایکی از شما انبیاء وقت زمان نبی آخر الزمان را دریافت باید اتباع کنید وقت انبیاء موصف بودن برای اتباع خاتم النبیین امت های آنها به طریق اولا بودند. بودن اللہ تعالی نگه بیاد خود بیاری هنگامی که گرفتے اللہ تعالی اهد و قیمان از انبیا این عهد و را از انبیاء کجا گرفتی بعضی نیگن در عالم ارواح از ارواح ای انبیاء این تاهود گرفتی شد لیکن دروس این موقع اعتای رسالت وقت خدا به هر نبی رسالت و نبوت میداد این عهد و فیمان ازو گرفتی میشود چی؟ لما آتیتو من کتاب و حکمت به خاطر آن که من به شما عنایت کرده ام از کتاب و دانش شما تا اكو بعد می آیات پیش شما رسول قدیم الصال و آن رسول تعلیم برای تعظیم محمد و صلی الله رسولی که مصدق لما ما تكون تصدیق کننده آن مدامینی هست که با شما هست که البته شما حتما ایمان بیارید به آن رسول، احتمایی کار شما ایمان به آن رسول بیارید، ولی تنصرانه و شما احتمایی کار آن رسول را نشتردید. اللہ تعالی میگه من به هر نبی و رسول موقع اعتای لبوت و رسالت این تا خود را گرفتن که وقت نبی آخر زمان رسول عبی مشان من آمد مصدق لیمان ما اکم حتما شما از به آن رسول ایمان بیاری و امم آنها تب بودن و اون نبی را نشرت کنی خالا اقرار کم الله تعالی اضافر بود که انبیاء و ای امتان انبیاء شما اطراب داری و میگیرید بر این مطلب و شرق اهد من خدا را همه انبیاء گفت اقرارنا ما اطراب داریم ما قبول داریم حالا الله تعالی گفت فشخم شما هم گواب باشید که انا ما اکن من الشاهدین من هم با شما از شاهدین هستم الله تعالی میگه اون پیغمبری آمده که در تورات از موسیٰ علیه صلات و سلام و در انجیل از حضرت ایسا علیه صلات و سلام و در زبور از حضرت داود و تمام انبیاءی که آمدن همین مجد دادند دادن که وقت نبی آخر الزمان باش بیاید لحظ اتفای من شما دیگه باید من داریم وانما کن من الشاهدیم فمن تولى بعد ذلك شرك اشراق کنند بعد از این عهد نبیین صالح هم الفاسقون انها حسن فاسقان در انها فرمان انها خدا خارج است فقم فرمان و اطاعت پیغمبر خارج عقل اکنون زد که آن نبی جرامی که برای او انبیاء علیه صلی اللہ سلام اهد گرفته از انبیاء اهد گرفته شبه اش تشریف آورده است. شما غیر دین او را سکن می کنید یعنی غیر الله را عبادت می کنید خاطر الله سبحانه و ساله می فرمد زجر اف غیر دین الله یبغل آیا غیر دین خدا را اینها طلب میکنند. غیر دین خدا را اینها طلب میکنند. دین حق آمن آخرین نبی با آخرین کتاب و هدایت ناما و تذکر ناما تشریف آورده اینها غیر دین خدا را طلب می حالا که لهو اسلم من که سماواتی والعرض برای دین خدا تشریمن تمام اون موجوداتی که در آسمان و در زمین اند فورا بر اشتغال به خوشت آتیمان، مؤمنین به خوشت آتیمان، انبیا به خوشت آتیمان، و کارهان و به ناخوشت کفار دل راه ندارند از خدا اطاعت نکنند. سردی خدا را تحمل می کنند، گرمی خدا را تحمل می کنند، نادری که خدا بران غافش می تحمل می کنند، مرز را آنها چاره ندارند، همه من توسط و من بر ارض و ناخوشی از اطاعت می کنند و اینها دارند خدا ایراد می کنند. دو عنوان اتمام حجت شما ایمان خود را و مؤمنگی را افغان برای اینها اعلام. بگوی ای پیغمبر آمنا بالله من و صحابه من سبحان الله آمن تو تن ها میگه پیغمبر صحابه را با ایمان خودش شمارو من و صحابه من من و تابعین من همه ما ایمان به الله آورده‌ایم الله را در ذات و صفات و عبادت که جایی نمی‌دانی و همچنین ما هم ایمان به بما انزل علینا داریم تمام داری ان وحی که بجانب ما نازل کرده شده حمل غمول داریم و اون وحی که انزل علی ابراهیم و اسمایل و اسحاق و یعقوب و اسباق همه این وحی آسمانی‌ها را قبول دارید که بر ابراهیم نازل بر اسحاق اسماعیل اسحاق یاقوب و اشباح فرزندان یاقوب الای و و به آن کتابی کتاب داده شده موسی و عیسی و تمام انبیا جانب خدا همه کتابهای آسمانی و انبیا را قبول دارید ظاہر فرق بین ان انهم بین هیچ نبی ما تفریق نمی‌کنیم همه انبیاء الهی را نبی قمداری رسول قبداری شما یہ یہود حضرت اشارہ قبول ندارند و نصارا حضرت همشارہ قبول ندارند معنا همه ما به انبیاء ایمان داری به انچه ناظر سبیت در انبیاء ایمان داری بینی ایچ نبی تطریق نہیں کنی لیکن در عبادت و عمر نحن الله مسلم ما فقط و فقط برای خدای لایزال تشمیل دیں عبادت جانی را عبادت بدنی را عبادت زبانی را فقط فقط برای خدا انجام بدید رسالت ها هم انبیاء را قبول دارند کتاب های و واهی همه انبیاء را قبول داریم لیکن در عبادت در اعتقاد در عمل ما فقط برای خدا است قسمی کنیم فقط خدا را میخریم فقط خدا را نذر خیرات نمی فقط برای خدا غیر خدا را نستا کنیم غیر خدا را نمی خریم و نه برای غیر خدا نذر این جمله جمله محسوسیه سروران جلالی نحن لهم مسلمون را خفیر جلاله ما کرده، نحن لهم مخلصون فیل عبادت در عبادت ما فقط خدا را عبادت می کنی. جانی مالی زبانی و من غیر الاسلام دینا فرق طلب کنن غیر از اسلام دینی دیگر را تو فلن یک و هرگز هرگز از اون فضیر افتر نمیشه نه یهودیت نه نسرانیت و نه مجوسیت همین اسلام که عبادت را به خدا استثار کده اسلام همینه نه رو له مسئلون هرگز غیر از این دیگه هرکی میرا طلب کند هرگز هرگز از اون دین فضیر نیست و اون در آخرت از خاطرین از طبحتاران در جید حاصلی رمانه کرده تو تا از سواحقاران در چیه چیف یهدی اللہ قوما طالعا نسبت به مرتدین سبحان اللہ رمو پیغمبر سی داشت که یهود و نسارا مومن ایمان بیا لیکن یهود و نسارا برای تمشکنی آمان سبتنا میکن آقا روز بیرونیم آبیاری با خور آخره هم. الله تعالی میگه من آرتش تو رهیدارت دوباره هم دارم. اینها ایکنیت و انابت هدایت ندارم. خالص من خدا قانون من اینه که بدون طلب و انابت من به کسی هدایت نمی‌کنم. هرکت طلب کنند هدایت را و بقاحد هدایت را من بیو هدایت نیدن آنهایت طلب نکنند و نکاہن من دانا هدایت نیدن کیسا یقین اللہ ویجبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم وراللہ صلی اللہ کفار مرتدیم را جتور اللہ هدایت کنند کونی را یعنی توفی کی هدایت بیو را در کونی کفر و بعد ایمانی ایسا آل ایمان کردم تو بات خافر شدن و شهادت هم دادن که اندر رسول حق کنی لیکن اعتراف مکردن خلانت و جاهلو البینات دلائل واضح و رشد قومده خبر کردن بعد از ادھار ایمان شهادت هم دادن که رسول حق در دعوی رسالت و جاهلو البینات و رسول هم با بینات پی شرغات جالب رسول آمد موجزات قرآن و آنها هنوز اناد دارم و اگر مشیمی میکنم اینها را من تجول بیارم کنه هدایت خالا که راه هدایت با انابتت والله لا یهدیل قوم الظالمین اللہ تعالی بمشد رنی رسانت قوم های ظالم دار یعنی راه هدایت نیست بلکه راه ارتدادت خالا هره خدا نمی ارد کهر خدا قدرت کهری برای ایمان خدا ایمان نمی کنست اولائی که این مرکده ها جزائین اینه که برای لانت خدا هست و و تمام دین که همیشه تو اون لانت تو این لانت یعنی توی شمره لانت یعنی جهنم همیشه تو جهنم میمانند آنها جهنم آنها یک ذره داده جهنم خب توبه کن. توبه علماء سخت سر ونده. هر چی را در خاطر اتمون و تنبیه خیانت کرده‌اند باید او را تبیح می‌کنه الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر آنهایی که توبه کنند یعنی مسلمان شوند بعد از این و اخلاقن ان چیزهای را که فاقد گردد. فإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم ودرتی که خدای ازد و جن بخشم دان مهربانی فیلن الله غفور الرحیم هست جان هارم ببخشه نگه شرایطی توبه سرختی و اصله همچنه فاکرد کرده اصراف کنن یعنی منافقه هر برقوردی داشتن هر نشان الله غفور بله، ایناللذین کفر و بعد ایمانی آنهاایی که کف کردن بعد از ایمان و سوم اضافه بعد این کفر را اضافه کردن یعنی تو کفر ماندن. هرگز هیچی روکتن نمیشود توبه آنها که از بناه کف، عدم قبول توبه بدون کفر. بدون ایمان امکان ندارد هرگز توبه آنها پذیروفتن نمیشه در روز قیامت. باز گناه به غیر کفر آنها هر گناهی سبحان الله غیر از کفر به هر گناهی توبه کنم توبه آنها پذیروفتن نمیشه با موجودگی کفر و شیر هیچ توبه انسان هم پذیروفتن نمیشه از گناهانی که غیر کفرن توبه کنن توبه آنها پسی ربت نمیشه چرا توبه بدون ایمان پسی ربت نمیشه و اولائی که هم الضالون انها اصلا بعد از توبه نیچن گمراهان درجه یه انن الذین کفرون آنهای کفر کردن حالت حیا در حیات خافرند و ماسی و می میرند حالت موت در حالی که هم خافرند هرگز فضی رفتا نمی شود از که چی که از آنها بروی زمین صلاح اگر پیدیه آن راهم بدند حالا اگر پرس کنین که پر زمین هم پر صلاح هست اونا ها پیدیه بدند که از اذاب که همم نجات کنن هر جز از آنها فسی رب آنکه ظایران هم لدامت هست و نخاطه هم فسی رب تلنیشه اولئك لهم اذاب الیم برین ها اذاب الیمی هست وما لهم من ناصرین وبرین ها هیچ مدد داری یا هست یهود و نصارا میگفتن اور ہر شے گناہ گار روز قیامت بدران ما انبیاء بودن بدران ما اولیاء بودن نہ سدا سبان نہیں گرن بار واپس کرندا نیاز کی اللہ تعالی بار بار میگه کہ برائے سالمین و مشرکین هیچ ناطری هیچ مدد دار روز قیامت نہیں ترغیب اہل کتاب بھی ایمان و اصلاح مقالنات کر دیں کہ یہود و نصارا به خاطر ریاست که بر مردم داشتن و به خاطر آن درامدهایی که از مردم محکول میشد برای آنها به این دو خاطر به خاطر حب مال به خاطر حب اینها نا آمدن و به دامن پیغمبر اسلام نا افتادن ایمان نا فکر می که از ایمان جاه ما از ایمان اون درامتی که می آمد از مردم به جیب ما می ریخت و به حساب ما واریز رو شد اون درامت برای ما نمی آید به این دو خاطر آنها ایمان نا آوردن و پیغمبر را اتباه نکردن با وجودی که هم پیغمبر را می شناختند و معارفت کامل شناخت پیغمبر داشتند. بین خاطر الله سبحانه وتعالی گفت که ما گفت شما هرچی توبه کنید و استقفار بگید و تزار رو بکنید هرگیز باموجودگی کوپ را شما که توبه پکی نمیشه. دی میشه پیغمبر را انکار میکنید توحید را انکار میکنید، پس شما هیچی بھی پکی روپتا نمیشه حکم اللہ تعالیٰ تردیم نیده حالی کتابا که لانتنا آلو برد هرگید و هرگید شما میتی حاصل ننی کنی، حتی انفاق کنی، از آنچران کی دوست داری فریادت را دوست داری خدا کنی، مال را دوست داری خدا کنی، بینی سیاک و سباک آئی رب پرمی ما آیا با علماء یهوزی صحبتش. ماباد هم با علماء یهود خود صحبتش در وسط آمد لن تانو البر حقا تنفکو من ما تحبون وما تنفکو من شیل فإن الله به علی در وسط آمد مثل انفاق درست سورت بحث انفاق حمی کنت روی سخن با نصارا هست با علماء لیکن عزت اشتاد راہی الله اللہ نبی دوکتا این بقاتل اون خوشت ریاستی و اون در آمدی که در حساب این علماء یهودون سارا می بیر بخاطر اون این ها ایمان ناوردن اللہ تعالیٰ گفت شما تا محبوب را پیدا نکنید، اون پوست را و اون ریاست را و اون حساب جاری که برای شما انها را پیدا نکنی بینیکی هرگز منی اگه ببینید اگر شما هر چیزی را برای خدا پدر کردی ریاست را برای خدا پد کردی ما را برای خدا پد کردی ال نطله دانا هست شما خل کنی. شما ضرر نمیکننی شما یک ریاست را برای خدا پداکننی پست را برای خدا پدا, خدا پدا و کنی با ا پست ریاست چیزی هست که انشب را برای بحث می فریم. اللہ تعالی مارا طالب دوست طالب مار طالب دیاست نکنه که بیشه انسان را همین چیز آج دین میبرن قرآن پر مدلن تنال البر هرگز هرگز شما وبر و نیکی نمیرفی حتی تن فکو پاینکه انفاق کنید از آن چیز آئی کی دوست دارید محبوب را تا فدا نکردید برای ساید الیاس را از ریاست و فوش چیزی محبوب ترت قدیز میرسی او مال میده خرج میکنه تابع بکانت برسن این های که رایگیری میکنن برای رای چقدر این ها خرج میکنن نمیکنن چقدر سردارهای قومهارا میبنند ادیه میدن نیت و شب میبنم میدن شواری میدن مال میدن نوید میدن که ما و تیل باشم فاصل شما روی به راستن که به چرا از اون خوش کی خواهم بالا تری بردن به اللہ تعالی هرگز هر شما به نیکی نمیدرد لند تنالون بردن هرگز هرگز در تاکید هرگز هرگز علم آئی یهود و نصارا شما نیتی حاطر نمی توانید بکنی حتی کہ خرج کنید از آنچه کی دوست داری اون ریاست محبوب را اون پست محبوب را اون امامت محبوب را اون ریاست محبوب را ہمارا پیدا کنید خرج کنید بگذارید خاطر ایسلام و آنچه هم که شما خرج می کنید ہر چیزی پستی ریاستی مالی درری۔ فَإِنَّ اللَّهَ إِهِ عَلِيمٌ اللَّهَ تَعَلَى عَلِيمٌ مُطابقِ شما خرج کرده بشما مغاملين شما اگر رياستی را بخاطر خدا بحل کرده خستی را بخاطر خدا بحل کرده خدا شما را عبر سنید از رياست رياست از مال محبوب ترشت رياست این اللہ تعالی علماء کی دعوت ہم کہ شما خرچ کنی ہر چیز باشه حتی غیر محبوب باشد تو اللہ تعالی عمر نہیں دی محبوب خرچ کردی اللہ تعالی می دی یعنی مطلقاً ثواب می ده الان باب شکرات مستر علین جل وعلی کی اعتراف کا شکر پر پیغمبر علیہ الصلات و السلام شما ادعای که همه قبول داریم؟ ایمان داریم و حرم ما و ما اسحاق، و قبول داریم. شما اتحاد همان بیارمی کم قبول دارم کتابان هره قبول دارم حضرت ابراهیم خلیلالله بوشت شطر نکرده تو بوشت شطر میخوری خوری یا خود بوشت شطر نکرده تو بوشت شطر می خوری آنها شطر حرام می دانستن تو حلال می دانی شیر شطر حلال می دانی تو و متبعانه تو بوشت شطر میخورید شیری شطر میخورید لید آئی مدهب دا امریان هم دارید اللہ تعالیٰ قبیم آنها این طیبات کی حلال بودن کلو طعام کانه اللہ لمنی اسرائیل اللہ ما حرم اخرائیل علا نصیب تنها اسرائیل به مشوره اتبا گوشک شطر شیری شطر نخوردن و بر خودشون ممنوع کردن و تحریم کردن و خدا تایید کردن شما وقتی تمام بنی اسرائیل خوردن ابراهیم علی صلی اللہ علیہ خورده شیری شطر خورده و تمام انبیاء خورتا تمام بنی اسرائیل یعنی تمام پرزندان یعقوب علیه السلام یا امیر مجاهد که معنی یعقوب ہے تمام پرزندان حلال بودانها خورتا الا ما حرم اسرائیل این مفسر صاحب مراقی میگه "الا ما حرم اسرائیل مراد حرم بنو اسرائیل به ظلمی تمام این چیزا حلال بودن من پر زندان اسرائیل از اسرائیل مراد بنو اسرائیل که به خاطر جن و جنایت بسیار تیبات را خدا برانا حرام کرد برانا اون حتی اثر و حلال بودن اسرائیل حرام کرده یعنی بکتهای اسرائی بقاطل جرم و جنایتی که کردن خدا جریمه شکر تیبات را برانها حرام کرده این توشیهی که صاحب ملاغی کرده و این توشیه را در تفسیر روح المعنی هم فکر کرده بود لیکن توشیه آمهی که مپسیرین نغل می کنن الا محرمه اسرائيل ام الله حضرت یعقوب علیه والسلام منجی داشتند دو, دو توذ ذکر اون که حضرت یعقوب علیه والسلام داشتند این دیگر حضرت گفت که ارک و نسا رگیه خدا این مریضی من را دور کنی شعی محبوب را برایت تو می‌کنم میکنم لنی و حدد یاقوب علی صلی اللہ علیہ بوشت شطور را و شیر شطور را خیلی دوست داشت وقت این مرد دور شد دیگه حضرت نمو بعدی میگن نا گفتن کی گوش شطور و شیر شطور مناسبی شما میس حضرت نا خوردن و بر خود کردن اللہ تعالی کو شما که مناسب تحریم شما هم قبولید حالا رسول علیہ صلی اللہ اثر حرام کردیم ماری چیب تیارا اللہ صالح اطاب کر لیمت و و اللہ, علی اللہ علی. بل حضرت یاقوب علیہ صلی اللہ بل وسلم رتائید حالا مسئله اینجاست که فرزندان یعقوب علیه السلام آیا این خوردن یا نخوردن اینجا مفسرین دو رأی دارن میگن فرزندان یعقوب علیه السلام خوردن پدر نخوردنها نخوردن لذا این تحریم تحریم عملی بوده اعتقادی نبوده خب شما بیاری تورات را ثابت کنی که تحریم ربیمیه قدامت تحریم ربیاری شما بیاری تورات را بخانید اگر راست نگید که قدامت تحریم بوده در زمان حضرت ابراهیم هم خورده نشده در زمان حضرت سا خورده نشده شما بیاری اگر مدیعیه و این چیز را هم بیارید که گوشت شطور و شیر شطور برای همه حرام است. یاری، با به تورات پرتوها. حالا هر که دلیل این دلیل امروز برای تمام این خرافاتی امت بنام دین انجام میده، دلیل شما دلیل تورات. دیگه تورات اگر واقعی راست میگی اگر توجیان باشد از اسرائیل مراد بنو اسرائیل تو پس در تورات الله تعالی دیلی متن حرام کرده ورنہ حلال بوده کل طعام کان حل للبنی اسرائیل قام انتی ذکر نہیں کہ برائے خوردن آمده را میشه خوردنی این طعام حلال بودن برای بنی اسرائیل الا من هم توجیه صاحب مراغی را می مگر آن چیزهایی که حرام کردن اسرائیل یعنی بنو اسرائیل یهودی ها بخاطر شرارت برخدوشان قبل خب ادین که تورات نازل بشه واد قبل خب ادین که تورات نازل بشه قبل از مزول تورا منو اسرائیم بر اثر شرارت بر خودشان حرام کرد تورا آمد گفت شما جریم ایدین یا یا توزی که آمم اکمر مراد بشک شطورت که حضرتی یعقوب علیه السلام بر خودش حرام کرد حرم اسرائیل ما از الفاظ قرآن تختی نکنیم بهتره حضرت یعقوب علیه السلام حرام کرد بر نفس خودش قبل از ناظر شدن تورات از حضرت یعقوب تا تورا چقدر مدت طولانی گذشته است که تورات بر حضرت موسی علیه السلام نازل و در تورات حکم حرمت گوشت ختنه نیست و در تورات هم نوشته شده که اسرائیل بر خودش اینو حرام کرد پس توجیه این است سی که فرزندان یعقوب خوردند بنی اسرائیل خوردند خود اسرائیل لا خورد هر اسرائیل ما از الفاظ قرآن را تخطی کنیم اسرائیل خوام کرده یا نفس بر خودش و الله تعالی هم تایید کرده نه گوشت شطور می کورم نه شیر شطور می بر نفس خودش نه بر اولادانش نه بر امتش اون هم قبل از مدول تورا تورا تامده و در تورا تلت گوشت شطور هست تلت شیر شطور هست قلبلرو پیغمبرین آرام بیاری تورات را و به آن تورات را. اگر شما راست میگید که قدامت گوشت شطور در زمان ابراهیم بوده و اطلاق صند در زمان ابراهیم و اصلاق اصلا بجره نبوده حرمت گوشت شطور یا سیر شطور بیاری تورات را حاقا اگر راست میگید که شیر شطور و گوشت شطور در زمان ابراهیم ممنوع بوده در زمان اسحاف ممنوع بوده و این تحرینی که احرائیل بر نفس که خونش کرده مطرح از الباز قرآن تخطی کنید حتی بر اولادان اگر تباید یا نوشتی کردن که اولادانی یا حکوم هم نخوردن ویلی تو روز دردن یا که لفظ قرآنی بر امت لب دلالت لنید لفظ قرآن دلالت دارد که اسرائیل علی نفسی حرامش کرده ممنوعش کرده و اللہ تعالی بغاطر مخلحت یعقوب علیہ السلام و, و این به اسطلاح پر ایش برای مریض این مشروعه و حتی دعا از خود پیغمبر ما هم صحابته حضرت این رضی اللہ عنہ انہوں میخواست خورما بخوره حضرت سرمود نا نا نا شما تازه مریضی سال شدهید و برای شما مناثب نیست ایش آزه ندادم حضرت علی که شما ناطح و تازه مریضی شفایاب شدهید و این غضایی گرد و مریضی شما مناثب نیست نا قیمه علماء در را مشروع میدانم برای مریض و حضرت یعقوب علیہ السلام مریض بودن و بزرگان نوشته کرده تفسیر کشام نوشته کرده حضرت مولانا که به خواهد اتباب حضرت گفت شما نکورید گفت من و به خودش تحریم کرد و خدا تاین هم کرد یک مثله شخصی بوده قانون الهی نبوده و این توجیح هم تو انسانی که به اسرائیل خیانت کردن جنایت کردن لطالت جنیمه ایشون کرد و کسی که افترا کنند بر خدا زهور را من بعد ذالکه بعد از این زهور اکیش خدا حرام نکرده این حرام بکنه در ظالمان تاریشه یک کل قل صدق الله بگوی پیغمبر در تمام ما زکره در حکم توحید و دفع شبهات خدا راست میگه اللہ راست میگه در باب توحید درباب از شبهات اعتراضات اللہ تعالی راستنی دیجئے لذا فتبی و ملت ابراهیم حنیفہ اے مردم همینی شما اتبار کنیم ملت و دین ابراهیمی را که اسمام باطن یک طرف بود درباب توحیر درباب عمال شما آین ابراهیم را اتباع کنید و حضرت ابراهیم شرکنندگان نبود و ما کن من المشکین نا اعتقادا نا عملا حضرت ابراهیم شرکنندگی نبود شما حالا هر جا سجده می کنید هر جا نادر می بید هر جا می خانید غیر الله ابراهیم شنها نبود خضر منسلک به انبیامیدانی خدرت بیرو شدت انبیاء می دانی محمد خانه انبیاء قبله شم بیت بوده و محل عبادت شم بیت بوده تو بر حقش انبیاء عبادت قای دیگر درست کردی روح به جای دیگر می کنی حالانکه بیت المقدس اولین قانه هست که برای عبادت خدا برای قبله خایم شده است خدا از متقیان انبیا میدانی هم خط انبیا میدانی انبیا رو به بیت المقدس نماز خواندند و بیت المقدس اولین خانه است در قوره خاطی که ساخته شده برای عبادت و قبله آن است الله تعالی میگه روز میگه به ایمان اولین خانه‌ای که ساخته شده برای عبادت و جهت قرار گرفت برای کبلا قرار گرفت برای ایبادت اون خانه هست که در مکه داریم. فرشتهای ساختن و بعد ساخته ابراهیم خلیل الله کبلا ابراهیم خلیل الله بوده، کبلا حضرت صاد بوده، کبلا یعقوب بوده. بعد از آن کبلا به تو مقدس بوده، لکه ایبادت گاو مطالب خانه کره. ایسا ضرور می گرن این خانه برای عبادت بیت الله است بعد از چهل سال بیت المقدس ساخت شد ساخت اول بیت الله را پر اشتغان بعد دکار ده مرتبه گشتی بود نمو بیارن کی این بیت ساخته شده اولین ساخت ساختندگان بیت پر اشتغان الہی بودن بعد آدم بوده است بعد نوح بوده و بعد از نوح علیہ السلام کی کلپان آمد و همه جهان را رو کر خانه کعبہ بازمین برابر شد و بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد از کلپان نور بانی خانه کعبہ همونی کی تقفی بود بعد لم یادره بود و جای خانه کعبہ بود کہ ابراہیم علیہ السلام آمد و صاحب بود اِن اول بیت جوان شبہا که به رسالت داشتن که گفتن که قبلتنا احتمون من قبلتکون الله تعالی میدروز مگه اِنَّ اَبَّلَ بَيْتٍ بُزِعَ الناس لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ اولین خانهی که بناشت برای انسانها از جانب الله برای عبادت بندگانش عبادتگاه برای انسانها ضد شده البته اون عبادتگاهی هست که در بکت است بکره معنی مکه میم را ببا بدل میکنن لغت مکه بکره بکره و مکه معنی توبنده هر کس نیت احانت خانه کابره در سور تاریخ کلده یا میکنه اللہ تعالی ربید کنه و روزی که خانه کعاوه احانت بیشه و احسنمین برداسته بیشه و سنگاهش به هم نوضو بله ریخنه بیشه یکی خیامت برداره هدایه دیل آلمین است که در نماز رخ دیونی کنند جهت آلمین است فی آیات و در این به که وصله برای بکای انسانها. نشانی های ادینی حقاً تکلیمی و تشمیمی فاضح و روشه چقدر عدمت دارد که روزی که این خانه بنا شده مورد تعدیم و احترام مشکیین این احترام می کرده خیلی احترام شد اندازه بی بیت اللہ احترام داست نرد و و این حرام که دیگه حد و مرد و از رودی که پیغمبر اسلام این خانه را از نور سے کرده مورد تازیم و احترام و قواف است بی یک ساعت در بیشت و ساعت و یک دریجا قواف اینسان تعدیز میشه عبادت اینسان تعدیز میشه الان همم انسانی گرے فکر کہ در ساعت یک بیت اللہ از عبادت و و خالی یکی محصد النبیر آباد از شامی بیندن سوان خادمی اگر خدمت داخل کسی نیست شب خانه کعبہ از تو چهار ساعت تواف و امادت چینی لحظه ای نمی آیا که بگه انسان دسته تواف کنندهی در طول سال دور برخانه کابل یا سب می برنم برای نماز یا سب توابی. کجا شقدگر می شه انسان ها پر اصلا پروانه این همه آیات دیگرات که عبادت خدا هست آنجا هست فی آیات و چقدر سبحان الله که آنجا زن مرد جواب همه در یک عشق مثل همه از فکر نیست به به رکن یمانی یا وارد نشن در حقیق واردت خدا تمنه آجیدی میچشمند آشقهای بخبر به غلاق خانه این شهر چشبیدت و گریه اوزایی ملتظم بین دروازه و پاین دروازه خانه کعبه و حجر اتفاد که در این آیات بینات هستن خدا چقدر آشق برای هزار اشوت دروس کرده یک لعذاب مردم ایتماس میکنند که به حضر اشوت بیشت می تمام شب و روز اونجا افتخان دور پشار بوده و بی ادب ها چنان پشار بوده که چیز مزموها بولنیشه ما وقت دروس برای اصطلاعون حضر این آیات بیناتن اینجا انسان میدید شاه زمزم جلوی این سخرت سنگ یک شاهی با چه آبی تباره میسید سبحان الله این آیات بینات شاه زمزم و امید تمام اهل مکه شاه زمزم آبی اونجا پلکشیر زدن و باکچه صورتی اتی آب ویزن اینا رب ها بیاند آخر ملرمید مدینه منفره تانقه چغال آب یا رنگه چغال شعبار آب یا رنگه چغال شعبار آب یا رنگه تمام آب این آب دنیا امتران دارمیشنی هر هادی کم از کم لیتر لیتر آب غیر از اونه آلهای دستبندی بندی اینها این هم حملی مکنم در تمام دنیا این آب میره آشمیده میشه من می کنم اونهایتی و اتقلند و وسیل از مرکت صاحب از خدا دنیا میان آب آشمیده خود را زمزم برمیدارم و این همه آجیه که بیشتو ساعت چهار ساعت از این وجام کنار چهار نینوشن، نینوشن، نینوشن و دومی تیره شر قدره بدن قدره خیش نکلن خدا این چیزی گذاشته ایت که نابر بذخور، بذخور، بذخور، بذخور بذخور بات خیش اشتقائی کن این ایات بینات اللہ تعالی بینات حجر اکسد آئی بینات رکن یمانی آئی بینات حتیم آئی بینات چهر دنگم آیه خون چیزی از بالای اون همین موقع مغرب تا که دور صدا دو انسان روزی خانه چی می چسپن خانه جان ای رب خدا اس این خدا از خانه را که انسان حیران یک خانیه در خوره خاکی چنین معاودی بیچ ملتی چنین که در دیست و چار یک هی آیات بینات خصوصا و قام ابراهیم اون سنگی که ابراهیم خلیلالله استاده نسل گل پاش توی شغفت ده وانچه ظلم خانه کعبه گزرشتی است شلو ایسی نزدیجی ایسا هم اینها برای مطاب ثواب کمی از زمان کسی جرعت نمی کنه اونجا تکانه او سنگی بستار بزرگی نیستی بس. کچی کلید اللہ دور میگی نو به ابراهیم و ام مللہا و ابراهیم و ابن غری اثر هر دو قدم مبارک بشه حسین گل راسته تو وَمَنْ دَخَلَهُ قَانَ آمِنَا من جُمْلًا اینه که هر که داخل بشه امن امن هیچ خطری او را تحدید نمی کنه حتی امام ابو حنیفه میگه کسی قتل کرد و رفت توی خانه کاف داخل شد توی حرم اونجا و را کساس نمی کنم قلب و طعام و غیرش غط میکنم که دا از خانه بید, بید بیرون و بیرون از حرم اولا مجازت میکنم آمن وللله ارنات هجو البید و برای خدا خشد لأهده انشانها خشد جردن بید من اختصا حالا بدل کرد برای برای خدا بر تمام انسانا حج بیت است یعنی برای کسان ایستطاعت الیه دارند این شرط فرقیت است که ایستطاعت چیه زاد و راهل داشت باشت من ایستطاعت الیه سبیده زاد و راهله ومن کفرم کسی که کفر کنه فرقیت حج را انکار کنه تو فلا زرر علالله زرری بر خدا نیست فَإِنَّ اللَّهَ غَنِينَ وَنِ الْعَالَمِينَ بدرستی که الله تعالی غنی از عالمین چرا قرآن عظیم اشان گفت و من کفره که احکامی که در حج انجام میگیره سروران گرامی یک ذره اغلی نهارا خوب تشخیص نمیده وید قمت سنگ روش شده و از همین کنه خاکی هست دور بره او چرخیدن و عبادت این را دانشتن اِخْذَ اَغْل اِولا قَوَّتِ اگر اَثَثَام فرنگي جناب سيدুনা عمار رضي الله تعالى ان دار برابر اون کو مي دانند ك انك حجر الله تن قولات ازو تو شنگی نَف و ذَر بر اختيار تو من تو را استلام كردم استلامت كيتونو با سرابور چشبیدن به اونو مقامی که بین حضر اتوار و بین دروازه تقریبا همین غده اتوار سلام یکمی بیشکل اینجا چشبیدن چی کهیتی دارست دنگا ملتظم و وقتی انسان می چشبه و کهینا را می زنه و رفتار را به اون قسمت می گذاره یک کهیت خاصی هست بلی اگه کسی این چیز را انکار کنه این چیز را حالا عجیبه خدا چه لطفی در ملکزم گذاشته این انسان این که چشفی خودش جیر میکنه و دعا یک خواهی به انسان درست می دهی بگی نها را پوچ در نمی کنه عقل کمیونیشتی در نمی کنه عمل ها رفتن به رفات رفتم به رفتم جمعات را زدن عقل اینجا دیگه زیاد همتایی نمی کنین عقل کسر زیر قابل بیسن حرف اینکار کنید احکام حجرا تو ضرر ات بر خدا نیست ضرر در خدا نیست شرا بین اللہ غنی عالمین اللہ تعالی غنی عالمین قل بیان حجرات بعد از دخش شبهات اللہ تعالیٰ قوبنده بی کوبه بگو یا حال کتاب لیم تخفر مدی آیات اللہ شرع انکار مکنی دا آیات الہی را واللہ شہیدون الامات آملون وماللہ اللہ تعالیٰ حاضر ایک شمسیم اینکون شما کتاب لِمَتَ سُدُّونَاً سَبِيلِ الله مَنْ چرا ما نمی در راه خدا با ایلاد شبهات شکوف شبهات در دین خدا در راه خدا ایلاد می کنید ام من آمن را ما نمی شوید در حالی که شب خود شما اون راه خدا را کج تلق می کنید تبغونها ایوجا یعنی با شبهات می و وانطور شبهدار شما هم بر کماهت این حرکت جواهید وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ خدا غافل نیست از اعمال شما اقرار بعد از داغری هر له کتاب تنبیه اول برای مؤمنین الله تعالی میگه مؤمنین این یهود و نصارا با اراده شوباط و با ترندهای گناگون میخوان شما را کافر کنن حواس جمع باشید یا ایوها الذین آمنو کم بی اول برای مومین یعنی اتم توجه بشبهات یهود ایسا ثانک شما ایمان آور دید اگر اطاعت کردید یک دسته ایرام من الَّذین اوتو الکتاب بوش بلل و شارون اطاعت کردید یا ردو کم بعد ایمان کم خاطرین اینا شما را رد میکنن بعد ایمان کافر میکنن حالا چقدران کہ گوش و بلیو خوشحال میکنن کرباتن بگلوز ردن شکل و قیافو و پوتی نشون مثل همانا آتن بس آره کافر کردن نگو دست اگر این آره کافر نمی کردن این حکام را چطور در در منابیل این کافر تر شنفائی نه و گوش و فرمان بوش و بلیو شارون نه اینا را بل کافر کردن ما دهان اینها را استاد می کنند، همکاری نه هستند، هم شغلی نه استند. و چه پتک کرود؟ شکار شما کوفر می کنی در حال که و انتظار تو تلاعه کمایات آیات الهی آیات بر شما تلاوت کردن می شود. اگر تا آیات الهی را تلاوت کنند نسبت به افسارون نمی ده. آیات را ول کردن کی کافی شده؟ لیکن در زمان کوران نازل نشود آیات تلاوت آیات تلاوت تطلع عليكم آيات الله و فيكم رسوله وأكلهم رسول خدا آیات و سنت رسول الله لیکن باش مگر بابو سے بلے رو شارون ان آیات الائے تلاوت ہرگز ومن یعتصم بالله ہر ختم تسخ کند به خدا تو او ہدایت دے الى صراط مستقیم شابه ساتھ تمسک بھی ایمان کرے تمسک دستورات الہی کرے اللہمی کہ لا تتقذ اليهود وانا نصارا ودیا و اقتقام به فرمان خدا بکنه یا تو سر به الله شنا به خدا کنه یا که ما به حکم الهی کنه تو او هدایت کردش راه درست موشکید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب